تکاری مزه میده اتوبوس تا دهنش پر بود از ظاهر که از مسافرها پیدا بود وسیله نقلیه را اشتباهی سوار شده بود. جای او اتوبوس نبود جایش فقط آمبولانس بود دست چپش با باند به گردنش آویزان بود سرش رو هم باند پیچی کرده بود یکی از چشمهایش باد کرده و کبود بود چشم دیگرش هم خون افتاده برسایش تکیه داده بود و سعی میکرد میان جمعیت داخل اتوبوس برای خودش جا باز کند. مرد بیچاره مثل تیک تاک ساعت مدام ناله میکرد. با وضعیتی که داشت اگر اتوبوس تکانی ناگهانی میخورد مرد بی از هم میپاشید. دستها و پاهایش هر کدام گوشهی میفتاد. یکی از مسافرها که روی سندلی نشسته بود دلش به حالش سوخت و جایش را به او داد مرد نالهکنان کنان نشست و به کسی که جایش را به او داده بود گفت دست درد نکن خدا و راضی باشه مردی که کنارش نشسته بود او را شناخت سلام سلمان بیک آه اه سلام شرف الدین بیک آه اه خدا بد نده چی شده چه برای سرت اومده آه, آه. دست رو دلم نذار سه ماهه که وزم اینه آخ آخ خدا بد نده سلمان بیک مریض شدین؟ چتون شده؟ اه اینم مریضی حساب میشه آره اینم یه نوع مرضه آه مادر به دادم ورست آخ, آخ، دکترها چی میگن؟ تشخیصشون چیه؟ آه، آه، این کار دکتر نیست که برادر دکترها هیچ کاری نمیتونن بکنن آه، خدا سر گرگ بیابون نیاره همه جام درد میکن انگار الانه که کنده بشه پامونه میتونم تکون بدم آه. نمیشه که دکتر نرین سلمان بیک اینجوری که من میبینم بایست تو مریض خونه بستری بشین کار مریض خونه نیست که شرف و دیم بیک شاید شاید تو دیوون خونه بتونن یک کاریش بکنن آه. آه. مریضیش خیلی هم واگیر داره شرفاددین خود را کمی عقب کشید گفت در اون صورت اصلا تو خیابون نباید می اومدین آه. آه. مگه میشه تو خیابون گفتنش آسونه تا این مریضی رو بگیر اون وقت ببینم چه جوری نمیای تو خیابون این مریضی رو من از پسرم گرفتم مگه اونم مریزه؟ نگو نفرس بدجوری مریضه داغون شده بیچاره مریضیش مزمنه آ ببین چجوری این مریضی رو گرفتم واسه تعریف میکنم پسرم هیچ جوری نتونست دبیرستان رو تموم کنه دو سال تو کلاس نهم نه خون، خوند بعد رفت کلاس دهم. ده دو سال تو کلاس دهم ده موند. همش هم واسه خاطر توپ بهش میگفتم پسرم این توپ و توپ بازی و بذار کنار میگفت آخه جوری بابا بهش میگفتم آخه بابا جون آینده نابود میشه آینده که هیچی خودشم داشت نابود میشد. روزهایی که مسابقه داشت شب مثل زخمی های جنگ برمیگشت خونه خدا رو شک پای چپش شکست و دیگه نتونست بازی کنه ببین چه جوریه که رازی پاش بشکنه آه. اه. اگه پاش نمیشکست و بازم بازی میکرد یه روزی حتماً می‌کشتندش میگفتم ایبی نداره بذار پا نداشته باشه اما زنده بمونه وای وای وای وای اوستو خونم داره ازم وا میره بعدش واسه بگم این دفعه پسرم شد دیوونه مسابقه با اون که خودش نمیتونست بازی کنه اما هر جور شده میرفته استادیوم واسه تماشا اگه تو آنکارا مسابقه بود میرفت آنکارا اگه تو ازمیر مسابقه بود میرفت ازمیر رفتنش تو سرش بخوره هر بار که برمیگشت میفته تو رخته خواب صداش میگرفت پسرم صداد چرا گرفته از بس داد زدم بابا خب داد نزن پسرم گفتنش آسونه بابا تو هم بیا اگه تونستی داد نزن از یه مسابقه برمیگشت میدیدیم سرش شکسته از یه مسابقه دیگه برمیگشت میدیدیم دماغش شکسته پای چشمش کبود شده پسرم چرا این شکلی شدی تو مسابقه دعوامون شد ای بابا وقتی خودت مسابقه میدی دعواتون میشه موقع تماشا کردن هم دعواتون میشه آره بابا خب دعوا نکن گفتنش آسونه بابا تو هم بیا اگه تونستی دعوا نکن نمیدونستم چیکار کنم هرچی چی میگفتم میگفت دست خودم نیست گفتنش آسونه تو هم بیا اگه تونستی نکن یه بار رفتیم پسر را از کلانتری درش یه مسابقه دعوا کرده بودن، و افتاده بودن که الانتری دو سه تو اورجانسه بیمارستان پیداش کردیم. بهش میگفتم پسرم، عزیزم. حیف از جوونیت نیست. آخرش تو این راه جون تو از دست میدی ها. میگفت میدونم، اما حیف که نمیتونم خودم رو بگیرم. از دور گفتنش راحت، تو هم بیا و خودت ببین. دیگه کنچگاف شده بودم. یه روز بهش گفتم، "بنا با خودت ببر استادیوم، میخوام مسابقه تماشا کنم." با پسرم رفتم استادیوم. بازی شروع شد. من طرفدار هیچ تیمی نبودم. هر کدوم می برد واسه من فرقی نمی کرد. بیشتر از بازیکانا تماشا چیا رو تماشا می کردم و دستشون می انداختم. یه دفعه دیدم آقا. یه توپ رفت تو دروازه سمت هم بار نفت. اما به جون هرچی مرده گل بود. آقا داور چشم همه گفت گل قبول نیست. من اصلا و ابداً طاقت بیانصافی رو ندارم. شروع کردم داد زدن اوه! یه اینک بدین به داور خیلی ها مثل من داد می زدن شیر سماور یه دفعه دیدم آقا یه آقای از وسط جمعیت رو کرد به من و گفت داور حق داره گل نبود گفتم صد درصد گل بود داور داره بی انصافی میکنه. قشنگ معلومه که از اون یکی تین پول گرفته اون آقای برگشت بهم گفت مرتی که مگه همچی گلی میشه؟ منم به اون گفتم حرفتونو به خودتون برمیگردونم مرتیکه نفهم پدرتونه چون دفعه اولنم بود میرفتم استادیوم آداب و رو نمیدونستم نگو اگه توی استادیوم کسی بهت بگه مرتیکه نفهم نباید حرفشو بهش برگردونی واسه همین تو حرفشو بهش برگردوندم یه مشت خوابون تو و منو ست زمین خدا رو شکر بقی پادرمیونی کردن و قضیه فیصل پیدا کرد و یعنی دیگه کتک میخوردم وقتی روی زمین افتاده بودم و از دماغم مثل لوله آفتاب به خون میرفت با خودم گفتم انان که پسرم بیاد کمکم اما ذهی خیال خام من بهش میگفتم بدو پسر کمکم کن اون بهم به میگفت وایستا بابا وایستا دیگه دران گل میزنن توی دماغم دستمال مال چفون دما شدم توی درم با تیمی که داور در حقش بیانصافی کرده بود و گلش رو قبول نکرده بود احساس نزدیکی میکرد. آقا، وقتی توپ زیر پای یکی از یارهای اون تیمی اومد، چرا خودمو نمیتونستم نیگردارم انگار توپ زیر پای خودم باشه، طوری که انگار بخوام شود بزنم پامو تکون میدادم بعد یه دفعه عقلم سر جاش میومد و با خودم میگفتم مگه من دیوونم سعی میکردم پامو سفت نیگردارم تا تکون نخوره بعد دوباره هوا برم میداشت پامو همچی با زر جلو میبردم، انگار الان توپ زیر شد میزنم. تازه اونقدر محکم میزدم که اگه توپ واقعی بود میرفت تو دروازه و تور دروازار هم پاره می کرد و از اون اونورش در می اومد. به نظرم که اونطور می اومد همین اینجور که با هیجان داشتم به خیال خودم شوت می زدم یه دفعه ناقافل محکم زدم به پشت آدمی که جرم نشسته بود بش گفتم ببخشید خیلی معذرت می خوام. اونم برگشت بهم گفت ای بی نداره تو مسابقه از این چیزا پیش میاد حالا این حرفا رو ولش کن توپو بچسب به داره گل میشه اینو که گفت یه دفعه لگد این دفعه به پشت من خورد ببین چقدر شدید بوده که به پشتم خورد اما تو چشمم انگار رعد و برق زد خب دیگه فهمیده بودم تو استودیوم لگد زدن و لگت خوردن عیب نیست چون همه داشتن به همدیگه دیگه لگد می‌زدن تازه همه هم غیر عمد. کسی قصدی این نمیکنه. نمیش نمی‌شناسدت باو دشمنی هم نداره فقط از روی هیجان به جای توپ به تو میزنه. باید باشی و ببینی شرافتت آخه توب یه کیلومتر اون وقت تره اون وقت چه جوری میخوای از این فاصله با پات بزنیش خلاصه شروع کردیم به لگت پرونی اونا به من لگت میزدن منم به اونا لگت میزدم اما هیچ کدوم تو قلبمون هیچی نیست آدم اون موقع از بس هیجان داره درد لگتایی هم که میخوره احساس نمیکنه. بعدش آقا یه توب تو دروازه ما داور بی همه چیز این توب با گفت گل شده این دفعه دیگه طاقت نیاوردم دیدم بازم داور داره بی میکنه. با صدای بلند داد زدم شیر سماور نمیتونستم جلو سمج بگیرم. خدا بگیرم دستپاچم تیریک تیریک می‌لرزید بغل دستم یه پسر نوشابه فروشو بود شیشه نوشابه ها رو برداشتم و به طرف داور پرت کردم حالا خوبه کنارم شیشه نوشابه بود و چیز دیگه ای نبود مثلا اگه نارنجک بود طرف داور نارنجک پرت بل بلبشویی شد که بیا و ببین تماشاگریا افتادن بجونام دیگه یه عده میگفتن گل بود یه عده میگفتن گل نبود خوب همدیگر رو لتو پار کردیم منم تو اون هیروویر یه بچه ده ساله رو گرفته بودم و داشتم خفش کردم واسه خاطر هیچ و پوچ کم مونده بود آدم بکشم خدا رو شک بچه گفت عموجون به خدا منم از طرفدارای تیم شما اینو که گفت ولش کردم تا بچه‌رو ولش کردم یه یارو مثل گول ویابونی و گرفت حالا نزن کی بزن همونجوری که زیر مشتل لگد بودم با چشم دنبال پسرم گشتم پسر سر کجا بود دیدم پریده وسط زمین چمن و داره حق داور میذاره کف دستش داد زدم پلیس پلیس هم غاتی کرده بودن بعضیاشون کنار رو میزدن بعضیاشون هم از تماشاگر کتک می‌خوردن به قول بیابونی که داشت کاتک میزد گفتم رفیق تو طرف کدوم تیمی نکنه هر دومون طرفدار یه تیم باشیم و بی خودی کاتکم بزنی خوبه که گفتم هر دو طرفدار یه تیم بودیم <تصفح> اما مرتیکه بی انصاف بود گفت حالا من توی این هیروویر طرفدار تیم مقابل از کجا گیر بیارم اینو گفت و شروع کرد به مشت زدن دیدم اگه وایس مردم. خلاصه هر جوری بود از ترس جون فرار کردم یکاستم چیا کسی رو واسه دعوا کردن پیدا نکرده بود و بیچاره داشت از حرسش نرده های چوبی جایگاه گاز میگرفت. نمیدونم چطور شد که اوسه یه دفعه انگار آروم شد و مسابقه دوباره شروع شد ما شروع کردیم به تشویق تیممون یالا یالا ما گل می‌خوایم یالا از بست داد زده بودم نفسم بالا نمی اومد صدام گرفته بود دیدم یه نفر قوطی حلبی گرفته دستشو داره میزنه منم شروع کردم به زدن قوتی علبی اصل ماجرا اون موقع شروع شد توی زمین دو تا از بازیکنا دست به یقه شدن ما هم دست به یقه شدیم یکی از پاهم گرفت و رو هوا پرتم کرد همینقدر یادمه که رو هوا پرواز میکردم بعد از اون دیگه هیچ یادم نیست چشمم وا کردم دیدم تو مریض خونه شرفادین بیک گفت پس واسه خاطر همین به این حال و روز افتادی همش همین نیست گفتن یک شمبه بر تیم ما با یه تیم دیگه مسابقه داره اگه دیگه میتونستم جلو خداو بگیرم از دور آسون به نظر میاد تو اگه باشی مگه میتونی جلو خودتو بگیری. اگه دست و پاتم ببندن بازم هر طوری شده میری جام درد میکنه بسته ای از دست سلمان بکفت خم شد و برش داشت بعد گفت اینم گوچی حلبیه باشه پور وقتی صدام میگیره گوچی حلبی میزنم اتوبوس ایستاد. مرد زخمی و بان پیچی شده ناله کنان بلند شد شرفادین بک گفت الان کجا میریم؟ پیش دکتر؟ نه بابا Estadio. Ah! Oh! Uh. oh.